اعوذ بالله ایل شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب الارمین و سلالله ایل سیدنا رسول الله و آله الطیبین و طهرین الماسومین و لا تضایمه سعلا ایداره مجمعین اللهم افتیم و جمعی المشهرین و الحمد و الحمد دلیل سوم آیان در باقی با جیت که به اکمامی و از شد که آیان متاخر ما وجور متعددی برای اکمام ذکر کردن و در همه مناغشه کردن عمده مناغشه ای که هست این است که این اجماع به نحوی نیست که به کشف قوله مومزش رو این خلاصه مناقشات هزارات و توضیح داده شد که قصولا دعوای اجماع اساساً از قرم تنجام در میراس های ما شده و این اجماع دعواش قصولا سالم ثابت نیست و به آقای متعددی رو که انجام دادن فی نفسه مشکل داره با قطع نظر از مسئله کاشفیت از قول امام محصول و ما اینکه خبر چمه حجت این سابسه این نمیشه این کار که احتیاج به اجماع هم نداریم احتیاج به دلیل هم نداریم مطلب نیست. اون وقت آیان به مناسبت اجماع متعرض سیره شدن. که چون در کتب احرسانت هم سیره متشرعین رو ذکر کرده بودن برای حجیت خبر در کلمات اصحاب ما سیره متشبعه و بعد از او تحمیل دادن به بنای اقلا و گفتن همین درسته و عرض کردیم مرموم استاد هم مردانشون همینه اشون عباسش خلاصش اینه که امنال اوم داده فیدهی حجیت خبر یه سیرت الاغلا الممزارت اندشاره این ادعای اول ادعای سیراست اونها خراج به تقریب سیره و اینکه این سیره چیه، حقیقتش چیه ایشان خیلی واضحه بحث نشدن فقط نوشتن سیره اوغلا و توضیحی ندادن بیشتر رفتن سر اینکه آیا شاره از این سیره منع کرده یا نکرده دنبال این بحث واقع شدن مرحوم استاد حالا بعد از اما دیگران چرا مرحوم آقای محقق ارابی مرجع این سیر رو به جبله و فطرت انسانی به مختزا جبلته و فطرت امول انسانیه اینا مراجعه به خبر می بیکنند که حالا شاید این عبارت ایشان مشعر به این باشه که یک نوع فطرت شخصی در افراد هست که با شنیدن خبر سقه پرکی با آثار میدن چاید مراد مورده ایشان این باشه مرموم محقق ناهینی قول خودشون سه تا احتمال دادن یکی این که این سیره منشهش اوامل یک سلطانی باشه قدرتی هم داده که به خبر واحد خبر سقه عمل کنیم و بعد این به صورت سیره به این اوغلا در آمدن. یکی این که یک امری از انبیاء الهی باشه که یکی از انبیاء چی نیمه بعدیش رو میگه خیلی بعیده نه این کادشایی باشه نه این که پیغمبری باشه هر دوش بسیار بسیار, بسیار بعیده و لذا نتیجه که این رو همون طبیعت فتح خودشون و روی فتح خود انسانی این سیره پس راجع به این سیره در این کلماتی که آمده تحلیل روشنی و تفسیر روشن نیست اشمال نمیم داره که طبق فتفت انسانی انسان عمل به خبر سقه بکنه این راجع به سیره که حالا ما بعد بحثش رو انجام میدیم دوم بخش دوم اینه که آیا شارع مقدس از این سیره نحی کرده منعه کرده یا به تعبیر آن ردعه کرده جلوگیری کرده خب اگر ممکن باشه و این باشه است که ما داریم که شایه مقدس نهی کرده از غیر علم آیاتی که در اینجا هست به دولتان اصحاب ما ذهب کردن یکی آیات لا تقف و ماله سلک و بیه علم یعنی دنباله چیزی که علم نیست نرو که خب این ظاهرش تکلیف حرمت عمل به غیر علمه و این اطلاق عموم داره یا اطلاق داره شامل همه چی میشه من ها خبر ثره اگر مفید علم باشه که علم حقیقی اگر مفید علم نباشه آیه مبارکه از اون نهی میکنه و دیگه هم ان ولنه لایق نی من این آیه مبارکه نشون میده که ز به حق و محن واقع نمی رسونه اینه زن لا یغنی من الحق شیع یعنی شما باید دنبال حق و واقع باشیم و زن شما رو به واقع نمی رسونه به حق نمی رسون خب خبر سقه هم همینطوره ولیذا خبر هم لا یغنی من الحق شیع. اگر علم باشه خب علم حجیزش به قلعان ذاتیه اگر علم نباشه داخل در عنوان زن میشه اطلاع شامل خبر سره هم میشه و ممکن است که گفته بشه حالا میشم بعد توضیحی میدیم حالا فقط در حد صحبت عادی ممکن است گفته بشه که این دعای مبارکه ناظر به عدم و حجیت زن و عدم و حجیت غیر علم در دو بقامه هم توی عقل نظری و هم توی عقل عملی اونجایی که میگه نظر لا یغنی من حق این عقل نظری بگیرین. زن شما رو به حق نمی رسونه. شما در مسائل عقل نظری باید دنبال علم باشین زن کافی نیست ولا تقف و ماله سلک بیه علمونم عقل عملی بگیرین. تو زندگی عملیتون شما دنبال غیر علم ندید ولا تقف و ماله سلک بیه علمون پس هم در محدوده عقل نظری و هم در محدوده عقل عملی شعاله مقدس سرمودن تعبدن شما دنبال غیر علم نباشه حالا خبر سهر هم که میان یا در محدوده عقل نظریست مثلا میگه فلانی برادر فلانیست مثلا نصر یا محدوده عقل نظریست یا محدوده عقل عملیست میگه فلان کار بر شما باجه طبق این دعایی مبارکه خبر سقهی که علمی ارمیز نه در عقل نظری کار برد داره نه تو عقل عملی چون اگه سقه به شما کن این برادر این برادری یک امر حقه یک امر واقع پرشن شد از اون ور آیه فرمود نظن لایقونی منال بشه یا. شما بازن به حق نمیرسیم در کردین یعنی؟ اون حق چیه برادر بودن و نبودن شما با خبر سقه به این که این آقا برادره نمی رسید این در عقل نظرین در عقل عملی هم لا تقف و کرده شاره مقدس از پیرای قفاییت و قفایی پشت سر قفایی پشت و قفایی به فعلی پشت سر کسی بودن ولا و لا تقف و ماله سلک بیه علمون دنباله چیزی که علم نیست نرو حالا اگر سقه آمد گفت این کار واجبه و شما این پیدا نشود، دنباله او بود اگر ایم پیدا ایم این پیدا شد که ام حدیدوی ذاتی است به خبیر آن این تمسکه به این دو طائفه از آیات و مایوشابه و آیات در عدم حدیدیت خبر سقه در اینجا در کتب اصول ما چون من الان میام اصول ما ندیدم این اشکال و جواب رو در یعنی مراجعه تازهی نکردم از سابه توی کتب احل سنت نه چه آدم توی کتب احل سنت باشه نمیدونم به هر حال توی کتب و اصول متاخر ما آمده همون وقتا هم که ما کفایت ترتشی میخوندیم یه اشکال عجیبی بود به ذهن ما عجی اشکال دور اشکال دور اینجا معروفه خیلی به نظر ما عجی و حالا این مطلب رو با اینکه که داشتم من توضیح ندم زیاد به مقداری که اصل مطلب روشن بشه بعضی خصوصیات رو دیگه توضیح نمیدم آران خودشون مراجعه کنم از کنم که نمیدونم اولین که ترکی این اشکاله کرده آیا در کتب اصول اهل سنته یا اصول متاخرشیه من الان تاریخش تو ذهنم نیست حالا یا حالا بحثی که از اینه من بحث رو بگم این آیات من میکنن از عمل بسیره اگر ای باشه بر بجرد خبر سره آیات معنه میکنم توضیحش هم دادیم چه به مستوای عقل نظری و چه به مستوی عقل عملی آیات معنه میکنم اون وقت اشکال کردم که اگر بخواد این آیات معنه بکنه دور لازم میاد این اشکال معروف و سعی کردم از این اشکال دور جواب بدن من چون بناست که آرام رو با کتاب معروف اصدار آی خویی ارجاع دادیم اجمالا عبارت ایشان رو می با یه توضیح مختصری بعد اینشالله مقلر شد واضح تر بشیم ایشون فرموزن که توهم شده که آیات ناهی عنال عمله به غیبه العلم راده اطوان من از این سیره بکنم بعد وقت جواب دادم اگر... که این آیات نمیتونه وعده بکنه این آیات مبارک. الوجه هل اول در ایشون فهمدن در کفایه و متن و حامشن وجوی زهده کردن حالا من این عباسیشون میخوایم آنه خاصای کفایه شما از متن بودن کفایه خارج توی مدت هاستی که این مقن کار کتاب مرموم استادارون خودوشون مراجعه کنم وجه اول مازکره و فلمت و هو که اونال آیات رادعتن عنه سیره این که آیات بخواد رادع بشه که آیات مانع بشه، مبتنی است برای اینکه سیره مخصص نباشه بلا اگر سیره مخصص باشه دیگه آیاد رادع نیست. و اینکه سیره مخصص نباشم متوقف است برای اینکه که آیاد رادع باشن باشه. باشن یعنی به عبارت دیگر الان من به هم مقدار ظاهری ایشان را توضیح میدم به عبارت دیگر اگر آیات میخواد منع بکنه باید سیره مخصص نباشه چون اگر سیره مخصص باشه دیگه من نمی‌کنه. نمیتونه مانه اگر از سیره میخواد مخصص باشه باید آیات مانع نباشه این دو اشکال دو همون فکون ال آیات رازه از سیره مستدزمون به دو اون یک این اشکال از یک طرف مانعیت آیات یک اشکالم از اون بره مخصصیت سیره چون میگن سیره اگر مخصص مخواد باشه باید حجت باشه اگر مخواد حجت باشه باید آیات راجع نباشه اگر مخواد آیات راجع نباشه باید سیره مخصص باشه. از این درم دور رزم میاد سن ما او رده علا نفسی به اثبات حجیت الخبر به سیره ایون دوری لعنمو متوقفان علا عدم کون ال آیات البته یه مقداری حضر شده مقدمات اینجا این اگر آین خواستن کتاب نگاه بکن اینجوری باید رو جن. حجیت الخبر یعنی الانه سیر و انه اثبات حجیت الخبر به سیره ایون دوری لعنه ها متوقفون نه لعنه حجیت الخبر متوقفون علا مخصصیت سیره و مخصصیت سیره متوقفون علا حجیت این سیره و حجیت این سیره متوقفون لن این اینکه آیات راضع نباشه. به تو مقدمش آرخوی هست فرمیدن حالا مراجعه کنن چون با توضیحی که اینشالا من عرض می کنم کاملا مطلبیشان روشن میشه و ما مطاعت کنه علاقه سیره مخصصتا لها این رو که من گفتم بهتر از اینست که و این اشکال در جهت سیره هم میاد به هم نکنه سیره مخصصتا للایاد اینه که بخواهد سیره تخصیص بده غیر متوقفه علا عدم رد واقعا نیاز نداریم بینید که واقعا ردی نباشه ظاهرن ثابت نشه یه دفعه بخواهیم ثبوت بشه عدم رد نه همین که رد ثابت نشد سیره اونجا همین که رد از این سیره ثابت نشد بل علا عدم ثبوت رد فلا دورفی تخصیص ال به سیره به خلاف الارس بره. این به اشکال معروف جور که یادو میارد از همون اول هم که میخوندیم در سر همیشه برای ما آور بود که این دور در اینجا چیه ارز کنم کدور قاسه آزادتون بعد الوجه با ثانی خب من این سه ایشان رو میخونم بعد توضیح میدم بعد واضح اصل بخص بشه جواب درگومی که ایش رو میکنن. با قولیشون بود فلحامش در حاشیه کفای آن مراجعه کنند و حاصله بود حالا تقدیر الالتظام ما برطرزم قبول بکنیم که نه آیات صلاحیت من دارن نه سیره صلاحیت مخصصیت بله چون دور لازم میاد تصل و نوبت و اصول عملی آیات و سیر هر دو ثابت میشه و المرجه و استصحاب الهجیه شون سیر و غلا قبل از آیات بود استثحاب میکنیم این حجیه تیه قبل از نزول آیات بود این رجوع بکنیم به استثحاب وجه سه همه که ایشون نهار کردن به احترام این که مرموم اصداد نهار کردن به الله وقتتون هم میکنیم دین حرفا نهار کنیم خیلی مازکرهو فلحامش ایزن تحبیل خودشون. و اون این که سیره نسبتش با آیات نسبت خاص متقدم. مثلا اگر گفت اکرمیل قدر علماء العدور این بارمسان رو خواهد بگن. بعد آمد گفت اکرمیل علماء آم رو بعد اوگرد این آم به اون خاص متقدم تخصیص میخوره گاهی میشه خاص اول میاد بعد آم میاد وقت دوران اهم میشه که اون آم ناسخ باشه یا اون آم تخصیص بخوره میگن تخصیص اولاست پس ما اول قبل از آیاتون مبارکه داشتیم که حجیقه خبر به سیره اوحلا این سیره بود آیه آمن نمیدونیم آیه تخصیص خورد یا آیه ناسخه چون نمیدونیم حمله بر تخصیصش کنیم این خلاصه این چه سطح ایشون نمیشتن من برای شما خلاصه کردم راجبین من بعد ایشون خود مرگ و مقای می‌فرمان تمام این سه مطلبی که ایشون گفتن در کفاییه تمام نیست ایشون اولا لکان عدم و ثبوت رد کافی هم فی سهت تخصیص آیاد به سیره لکان عدم و ثبوت تخصیص چطور شما دو رو از یک فرم برداشین؟ گفتین رد ثابت نشه کافیه اونجا هم ثابت نشه کافیه فرمه میکنم مثل هم این حلمت و ثانیه بعد ایشون میگه ان تحقیل افسو شما ذکر و قدس رو لحن تخصیص عمومات به سیره چون تخصیص عمومات متوقف است بر حجیت سیره حجیت سیره متوقف بر امزاد فلا یک خیف تخصیص عدم و ثبوت رد عدم و ثبوت کافی نیست ثبوت عدم و رد باید ثابت بشه که نکرد باید بعد ایشون میفرماید پس مخصصیت سیره دوریه اما رادعیت آیات دوری نیست وله وله متعین وله التزام بکنه ال آیات راده از سیره لا انه سیره مخصصتون للا آیات حالا این مطلبی ایشون رو من بخواهم خودم توضیح بدم انشاءالله من به مقدار اجمالی که بخونم بعد توضیح از. و اما الوجه ثانی که با برگردیم به ها، اولاً معلوم استاد ازداشونی که استثحاب در این دو جا نیست چون در مثل احکام کلیه به نظر مبارکشون ایشون حجت میز، البته ایشون در احکام کلیه به خاطر تعارض حجت نمی دونن، اخباری ها فیزاتو حجت نمیذارن. ما معقیده با با اخباریاست. ما ام استصحاب حجت نمیذاریم. و ثانیاً اگر آیات جلو سیر رو گرفت، آیات رو میگیره میگیریم. و ثالثاً دلیل استصحاب رو روایات. با روایات نمی کار این کارو کنیم. یه مطالب دیگه هم بعد فرضیه که حالا اونها جلو گرید. و اما وجه ساله است فه المقام من صغرایات دوران اموی تخصیص و نصر متوقفون علا احراز کلن سیر و حجتن احراز بشه که سیر و حجت بوده فیادور لهم بین نصر و احراز کلن سیر و حجتن قبل نزول ها متوقفون علا احراز کلن شارع متمکنن منرد قبل نزول ال آیات متمکن بوده و ان نال به اثبات داله حالا این زیر ایشان که ایشان میم فهمید که ایشان فهمدن چیه من قبل از این که وارده خود ایشان یک جوابی داده خوده. یعنی سه جواب نه ایجاب اصلا که اولا تا اینجا که ما متعرض شدیم اصل مطلب رو یه توضیحی بدیم که اصلا اشکال دور چیه و چرا دور لازمیان و سر مطلب چیه بعد وارد اون جواب هایی که داده شده و تغییر مسئله. دقت بفرمایید دور در اینجا که ادعای دور کردن که سیره میتونه جلو آیات میتونه جلو سیره بگیره یا نه. این یک نکته فنی داره. اول اون نکته فنیش باید روشن بشه که مرجو واسطاً متأسفانه ننوشتن. بعد اون مطلب روشن بشه. ببینید دانش حساسا خب این که شارع بیاد با آیات و باره که بگه شما به این سیره اغلا عمل نکنید اغلا بناشون به اینه که به خبر واحد عمل بکنن به خبر سفر شما نکنید این چه مشکلی داره؟ مشکل خاصی دارد مثال های عرفی واضحی هم دارد قانون بیاد بگه آه شما قوانین مجلس رو از روزنامه ها نگیریم پنج تا روزنامه ها امروز این قانون تصویب شد شما نگیرین شما قوانین رو از سایت مجلس بگیرین همه از سایت مجلس این چی نوشته قوانی از اون بگیرین این چه مشکل داره اینکه که بیا اگر بخواد رادع باشه دور لازم میاد چه مشکل داره اول اصل مطلب خود تصویب بکنی آیا مشکلی داره که شاقه مقدس شما از خبر سفه نگیرین دست سفه گفته گفت دلیل واضح بر این مطلب چون میگم من استاد هم باجرات جرایت خوب توضیح نهدن مطلب با. دلیل واضح بر این مطلب این است که ما الان فتوای مشهور علماء بر این است که خبر سره قلب خبر عدل واحد در موضوعات خارجی حجت نیست شاره گفته حتما باید دوتا باشه تعدد فتوای اینه دیگه مثلا سقیل آمد گفت این آقا برادر اون آقاست به نصف شهادت داره. بناشون به اینی که حجت نیست باید دو تا بود موضوعات خارجه الا ماخره شده دارید چه مشکلی داره که آیات راده از سیره بشن پس این مشکل چیه است ؟ این دور و مشکل و اینها چیه از هم مشکل این نیست که آیات نمیتون راده بشن یا سیره نمیتونه مخصص بشه مشکل این نیست ظاهر احوال استاد اینطوره مشکل در حقیقت تعبیر برگشتش به یک نوع ادبیات عالو نیست یک نوع تعبیره باعث اینه جایی که تعبیر بکن شاره که شما دنبال علم نرو خوب دقت بکنید شما دنبال حق برید خوب عمل بکنید و از آن طرف سیره و اغلا بیاد شده که با این را شما به حق میرسید. این مشکلی. درستان تو مشکلی. میگه لا تخت و ماله سیره که بیهی سیره هم آمد که خبر سقه رو مثل علم گرفتن. خود گفت بکنه. با اون تعبیر جلو این سیره نمیشه. با اون تعبیر. به قطعه این سیره و اگه یه شوارع بگه آقا خبررسانو وجد ندید مشکل نداره دورم لازم نمیاد برعکس هم سیره اوغلا هم باشه فرض اون سیره اوغلا که به خبررسان ما سیره رو بوندم توضیحاتش بده ارشد این اشکال مانع شه شما پاسح میدید که انشاءال توجیه خواهند ما برعکس سیره اوغلا هم داشته باشیم سوال چه مشکل داره شوارع بگه شما به خبررسانه عمل نکنیم. همچنان که در موضوعات خارجی گفت به خبر فعل واحل عمل نکن در احکام بگه به خبر استقیه واحل عمل تا پنجتا سرواد بگه تا سر یا به تدبیر سید مرتضی میگه شارع به ما دستور داده به جایی که تلقیه من قبول شده شما احکامی رو به اسلام نسبت بدیم که مسلمانها قبول دارن این که یک فقیل خواهد باشید به درد نمیخول به. این که یک باشه و او هم باشه فوق الان آدم سقه این چه مشکلی دارید؟ این مشکل نداره مشکل اول دقت قطعه بکنیم متاسفانه چون یک در زل جابش بستم خیلی اهل این و قطعی ها نیستن که معلوم میشه که اگر مطلب که کام شده کلامه مقرر اشتباه نباشه یه مشکل در تصویر مطلب پیش آقا مشکل کار کجاست با این تعبیر خوب دقت بکنیم این نورنه لایقونی من الحق سیرم آمد گفت اگر سر مطلبی گفت هو الحق این تعبیر نمیتونه جلو اون سیر رو لگه به قطعه نکته چیه؟ نکته نکته چرا؟ چون این میگه حق این نورن لایقونی دارم سیرام آمده میگه حق پس این سیره باید ثابت بشه که گفته این حقه. کی ثابت میشه که آیات مانعش نباشن. آیات مانعش باشن سیره به رو. این مسئله دوره. دور که پس مسئله اینم روچن شد دارتون. مسئله دور یک مسئله تعبیری نه یک مسئله قانونی. از نظر قانونی میشه جروش گرفت. یکی مشکل نداره. یعنی سیره هم ثابت باشه. سیره هم ثابت باشه سیره و شارم شاره میگه احکام من رو به خبر سقه نگید میشه بگه چه مشکل داره نه دور لازم میاد نه چیزی لازم میاد مشکلی که در اینجا هست با این تعبیه خوب لا تقف و ماله سلک بیه علمه این تعبیه مالا علم. علم سیره میگه خبر سقه علمه دقیق کردی سیره چون سیره میگه خبر سره علمه این که بخواد بگه لا تخم آلای سدک شامل سیره بشه این مبنیست برای این اینکه این سیره حجت نباشه چون اگر سیره حجت شد بیشه این علم اگر علم شد از آیه خارج میشه پس بنابراین اگر سیره بخواد جلوی اینه بگیره باید این سیره حجت نباشه. اگر میخواد سیره حجت نباشه باید آیات رو میگه بگیره. این دو. صد مستقله قانونیش نداره و فقط حالا نه خب غلا اینجا به تخصیص آیه بیاد شامل میشه به عمومش اینطور بگه. اصلا آیه بیاد بگه شما در احکام دینی کلن به اجماعات برگرده این مشکل داره؟ درد شاره تو آیات نه بحث در شارع نیست، این بحث قانونیه فرق نمی کن شارع اما قد نمی خب حالا همین این تعبیر آیه سؤال اینه این تعبیر، این تعبیر شامل از این سیره میشه شه میخواد بگه اگر آیات راضع باشه این مشکل داره چون این آیات وقتی راضعه ای که این سیره حجت نباشه سیره که این حجت نیست که آیات راضع باشه دوره دور اشکال دور اینه چرا؟ چرا دور لازم به خاطر اینکه اصولا تعبیر آیات رفتی رو عنوان علم و حق سیره هم مشکلش اینه که اگر ثابت شد میگه علمون و حق بار. چون این سیره و اغلایی که میگه خبرسته بابا جده یعنی چی؟ یعنی سیره و یعنی چی یعنی اگر کسی سقه گفت این برادر حق اون حق کن اون آیه گفت لا یو نیمه نال حق کشه وقتی تعبیر حق است و اون سیره حقه این دوتا نمیتونن با هم دیگه شاخ به شاخ بشن بگیم آیاد راضی هستی هستن این اشکال دور اینه خلاصه اشکال دور چون گاهی اشکال دو اشکال قانونی است. در باب درباب منای علماء مثل من استاد و دیگران درباب حصول علم شارع نمیتونه بگی به علم عمل نکن چون حجیت زادی قائل البته ما در باب علم گفتیم اونجا هم به واقعاً الاخباری گفتیم اونجا هم میتونه بگه به علم عمل نکن دیگه خود دیم حرفایی شیخ و دیگران و مرحوم ناینی و آزیوب اونا اصرار به خلاف مرحوم آشانسه نسبار اونا اصرارشونه که توی علم نمیتونه شارعه بگه به علم عمل نکن اون یه بحث اوشن شد اون اشکال اشکال قانونی در رونهنفی اشکال اشکال ادبیاتی ادبیات غیر خالونه اشکال اشکال تعبیری یعنی این تعبیر کافی نیست برای جلوگیری از این تعبیر چرا چون تو این تعبیر رفته لاعلم علم سیره دیگه علمون این تعبیر نمیتونه جون این سیره بگیره تو این تعبیر رفته حق سیره میگه خبر سقه حق کن خبر سقه تریبونه لطف این تعدیر نمیتونه شروع سیره بگیره دقیقه؟ یه دفعه نه مشکل مشکل قانونیس مثل ای مثل این مثال برای این مثال خارجی هم بزن برای آشتانی ازه در واقع تقلید مثلا آیون میگن در نقاطی که محل اختلافه به اون کسی که به اسطلاح واجد قیده اختلافی نیست میشه رو کرد مثلا اگر خانمی مسلم فقیه هست و مشهد است و فتوا داد که تقلید زن جایزه بنای علما بینه بی که به بی این فتوه اونه میشه عمل کن چرا؟ چون این که زن باید باشه مقلد یا مرد این خودش اختلافیه تو مورد اختلاف به محل اختلاف نمیشه مراجعه کرد اما اگر فقیه جامعه شراط مردی بود فتوا داد تقلید زن جایزه میتونه از اون زن تقلید بکنه با که خود اون زد بلکه بالاتر خود دقیقه بکنید اگر این نقطه اختلافی بین دوتاشون اختلاف پیدا شد در این نقطه حتما باید به واجد اون نقطه مراجعه کنه حالا مسئله خیلی واضحی خدمت از ارس بکنم که پس که مقلد یک آقای بود حالا علم هم بود فوت کرد خود ایشون فتواش اینه که تقلید برمه یه جایز نیست تصور بفرمو مغلله دقیقی گفت که ببرماز بحید رجوع به حی شد خیلزم اینه که اون میهدضان حی گفت اگر میهد الانه یجب الفقه پس بحید برگرده به میهد برگرده به میهد بید نیگه یحرام البقه پس بس برگرده به حی نیگه بس بقیده به حی دقیقه یگه یجب چون میهد الان بوده د قصد این شبید دور اونجام نوشتم این دور مقام قانونیه جواب این مطلب الان در خلال بحث ما روشن شد جواب این مطلب اینه که این دور نداره اینه که میگه یجبال رجوع الالحی به هی رجوع روزونه هی میگه یجبال بقا به میت مراجعه میکنه خوب دقت کنید. الا تو مسئله تقرید میگه یعنی به کل فتوابای میت عمل میکنه الا به این فتواه یه رومال بقا علا تقلید المیت دیگه قول المیت تو این که حجیت نداره چون این نقطه خلاف بین حی و میته در اون نقطه خلاف کسی که فاقد اون نقطه از قولش حجیت نداره حجیت مال است که واجد اون نقطه است. پس ابتداعا تصور فرمودی به تقلید زن ولو زنده زن تقلید زن جایزه نمیشه مراجعه کرد اما اگر به تقلید مرد مراجعه کند و مرد گفت یجوز و تقلید زن میتونه از زن تقلید بکنه یعنی به عبارت اخطا در اینا دو توش لازم نمیاد اینجا نوشتن دو اونجا جوابش اینه این جور موارد اصولاً کسی که فاقد اون نقطه محل کلامه اصولاً رأیش از حجیت ساقط میشه اونا چه دفاع بکنن اگر میید گفت یه یه روم البقا علا تمید المید رفت به هی هی گفت اگر میید دعلمه یه بقا اینجا یه از بقا علا سوالتون جا نه اینکه این دور بخرایی زنده و مورد مراجع کنه این جوابش اینه که برگرده به مرده آراع مرده قابل حجی حجت اللا در یه روم البقا علا تمید المجید. خصوص این فتبا خالجون چونه به کل رساله عملیه میت عمل میکنه الا به خصوص این مسئله اونجا مشکل مثل مسئله مشکل قانونی بود که توضیح دادیم در مانعنفی خوب دقت بکنید مشکل مانعنفی که دو میگه آیات نمیتونه جلوگیری بکنه یا اون میگه سیره نمیتونه مخصص باشه مشکل مشکل تعبیری یعنی با این اخلاقات دلیل منع ما این اطلاقات باشه. این نظرن لا که نرحقشه. عنوان اینطور. عنوان حق و لا یغنیم نرحق. این تعبیر نمیتونه بیاد بگه به سیره عمل نکنی. چرا؟ چون سیره اوغلا میگه من حقم خبرستقه حقم. بله. ممکنه دلیل شرعی بیاد. بگه آقا به خبر واحد به خبرستقه عمل نکن. وقد بحث بکنه تو این مسئله مشکل مشکل قانونی نیست مشکل مشکل تعبیریه مب دولت فارسی مشکل ادبیاتیه مشکل مشکل ادبیات قانونی نیز. نه نه او قانون شکار میتونه سیر رو بگیره چون از دادن من می‌خواستم خیلی تو این جواب سومی که از وجه سومی معلومه استاد جواب دادن بله ایشون نوشتن در این صفحه ی دی و به اصطلاح سی و دو بله و احراز و کون سیره هجتن قبل نوزول آیان مصببت بخونه علا احراز کون شاره متمکنن من الرد قبل نوزول آیان ظاهرش این عبارت ها ندیدم اعبارتشون رو بخونه داره این معنیش اینه که شاره تمکن از رد ما نه شاره تمکن از رد داره اون که اینا میگن شارع تمکن نداره تو علمه اینجا علم نیست خوب دقت بکنیم اشتباه نشه مطلب سوال اینه شارع نمیتونه رد از سیره بکنه چرا میتونه این مشکل نداره سیره قطعی علماء که خبر سقه حق هست و خبر سقه علم از سیره اوقت ها شارع بگیم من قبول نداره این مشکل نداره مشکلی که هست تعبیر خوب دقت بکنیم مشکل مشکل ادبیات قانونی است این تعبیر ان ای تن نلایب نیمن الحق شیئا نمیتونه جلو سیره اوغلا رو بگیره چرا چون سیره اوغلا میگه خبر سقه حق این آیه میگه شما به غیر حق عمل میگه حق تو یعنی سیرا اگر عمل این آقا برادر این آغا اون این آقا خواهر اون آقا سی میتونه بگیره این حقه اصلا سیره مخالفش اینه که این حقه سیره مفاضلش اینه که این علمه گفت بالا تکو مالای شرک به علمه پس صحبت رو خود دقت بکنین صحبت اینجاست این از کردم ظاهر عبارت استاد این است که شکارع نمیتونه جلو رو بگیره ظاهرش مالا اون نمی‌تونه قبل نزول آیه ولیکن این تغریبی رو که من عرض کردم تغریبی که محمد محقق عراقی آوردن در تذکراتش هر با محقق عراقی ماکی ایرانی میگه باید یه تعبیر دیگری بیا جلوسی رو بگیره این تعبیر کافی نیست حق واقع شده انصافا میگه این علم شما واقعا دارید میبینید میگه سقه گفت که این مثلا این آقا به اصطلاح برادرشه شما دنبال عرفی دنبال مالیس علم نیست این خودش در لوقت معنی وضوحه زهوره. اینجا ظهور داره وقتی سقه گوه پیدا میکنه وقتی سقه واقعه رو به شما نشون ده حق رو به شما نشون میده خوب دقت روشن اصل مطلب پس بنابراین حالا این چون مرمون استاد نوشتن شما خوندیم مجمنم شما اگه دو مرتبه مطالب نگاه بکنین روشن میشه که اصل پس بنابراین اصل مطلب این بوده آیا آیات مبارکه میتونن جلو سیره رو بگیرن چرا نمی تونهن نه اینکه شارع تمکن نداره شارع تمکن داره در قبل از نزول آیاتی از نزول قبل از نزول آیات یعنی مراد اینه که اصلا شارعی نبوده خب چیزی نیست که بخوام که خیلی بدی و فساده که باز این تو بله اونوردم چرا خوندم گفتم نمیشه مگه مقرر اجتماعیشته باشه یا چاپونه اجتماع چاپکی نه این ذیل اباطی شان نه ها به هر حال حالا چه مراد ایشان باشه یا نباشه پس بحث دوتا شد یک بحث که شاره میتونه جلبسیه و قرار بگیره اوقا کاری جواب قابل میتونه بگیره چه مشکلی نلیدون خبره چه اوجد هست بحث دوم با این تعابیر میتره شما این مشکل داره با این تعبیر که شما دنبال علم برو دنبال بزرگ برو خب اوقلا که این ضوه این علم سر خبر داه. سرره گفته این آقا نظر اون این ضوه این علم پس ما دنبال غیر علم نیم. شما گفتین انلا یغ مینحق شه یا این ح سره گفته من, گفت من میدارم این برادر امترارش مت این می این برادر اونونه وقتی سر خبردار به سیره اوقل میشه میشه ظهور میشه عمر اون تعبیر نمیتونه جلو سیره بگه و مجموعه اش... این دو اشکال دور مراد اینه چون اگر بخواد معنی بکنه بگه آقا به این سیره عمل نکن باید بگه این سیره حجت نیست یعنی این سیره قبول نکنه باید بگه این اگر بخواد بگه سیره حجت نیست این معنیش اینه که از اون کرده باشه لذا بگم دور رازه و به عبارت این اخراب اشکال اساسی در این اینه خوب دقت بکنی من به این مثال میترم شبا توضیح بیشتری رو بعد عرض میکنم گفته شده این آیات که باره که راجع به عقاعده حالا گفته شده که این آیات ناظر به عقاعده اگر ما آیات رو ناظر به عقاعده بگیم بگه اشکال پیش نمیان چون آیات اطلاق ندارم همون ندارم. در س یه اغلا بحثشون در قانونه کسی سنه به شما بیگه تلر اینجور گفت یا دولت اینجور گفت روزامه نوشت روزامه مورد اعتماد اینطور درش بحث اغلا در قانونه آیات مبارکه در عوارده خب به هم نمیخورم اون یک جا یک نگدر دقیقه چیه پس تصویر چیه تصویر اینه که یک خوب دقت تب کنی شارع مقدس عمومات عموم یا اطلاق بورد دو شاره مقدس این عموم و اطلاقی رو که اوورده با عنوان تعبد شرعی اوورده خوب دقت کنید. سه سیره ای از اوقلا هم هست این سیره مخصص این عمومه، این سیره مخصص این عمومه مقعید این اطلاعه اشکال کجاست؟ میگن با این تعویر تخصیص درست نمیشه. چرا؟ چون اون نقطه ای که در آم آمده با اون نقطه ای که در خاصه اینا درست نازره به همند لذا نمیتونه تخصیص بده اما اگر به لذا حالا منبال مثال مخوام بگم شما اصلا گفتید گفتیم من بعد توضیح میدن شما اصلا گفتیم ما آیات و ما اطلاق نداریم اصلا تعبد نداریم اصلا بحث دیگه لا تقبی مالای که بیه این تعبد نیست اطلاقی دید اگر تعبد نبود اگر اطلاق نبود دیگه دنبال این بحث نمیدیم چون یه سیره مخصص نمیخواد بشه دیده اطلاقی داشت. بحث نمید لذاب دقیقه بکنیم زاوی بحث رو زاویه بحث این است که این تعبد است و اطلاق داره و این اطلاق به سیره تخصیص خورده اشکال اینه که اون نکتهی که در اطلاع آمده با اون نکتهی که در سیره است با هم نمی نمیتونه نمی تونه تسلیز بزنه اون این اشکال دور رو مجموعه کلمات چهار تا احتماله از طرف راضعیت و آیا دور باشه مخصصیت سیر دور نباشه احتمال دوم به از که برمون مصدر اشاره کردن از طرف مخصص سیده دور باشه، از طرف آیات دور نباشه. اشکال احتمال سوم از هر دو دور باشه. همه از این طرف بگیریم دوره هم از اون طرف بگیریم. احتمال چهارم از هیچ طرف دور نیست. نه از رادعیت دوره، نه از مخصصیت هست. یعنی چهار تا احتمال در اینجا طبق این تصوری که از خدمتون داده شده. دور را از یک طرف قبول بکنه مثلا مرو مازیا دور را از ناحیه مخصصیات قبول می‌کنه وقتی خوی منون گذاش عوضیشون کندی دور را از ناحیه مخصصیت قبول می‌کنه البته بعد تو مقام جواب کلی خود ایشون اصلا قبول نمیکنه ایشان دور را نه از ناحیه راضیهت قبول می‌کنه نه از ناحیه مخصصیت حسب بنابراین یک از ناحیه راضیهت دور باشه نه مخصصیات این در کفایه‌ای دو از ناهی مخصصیت دور باشه نه راضعیت این جواب استاد بینشانه اشکال کرده استاد بینشان سه از هر دو طرف دور باشه الان نمیتونم به کسی نسبت بزن چون از کم جذور مسئله دگاه مکرد این شاهی مسئله چهار هر دو طرف دور نیست این همون هر بیز که مرحوم ناهی آرخوی میگن نه از طرف راضعیت دور هست نه از طرف مخصصیت حالا این من توضیح دادم چون دیگه وقت همون شد فردا انشالله بقیه مطلب رو میخونیم و انشالله دیگه فکر میکنم مطلب کاملا واضح واضح بشه اسلام الله و الله